اوزو بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسته این انه خیر و ناصر و مئین و باز هم مسئله عدالت و حدیث مکرر ظلم و قصد جور و عدل و گفتمانی که اون رو پایانی نیست وقتی نگاه به زاویه دید امام صادق علیه السلام به عدالت میکنیم از منظر حضرتشون عدالت یعنی سیطره عقل بر نفسانیت در درون انسان وقتی که اعضا و جوارح تمام های نفسانی انسان به سیطره عقل انسان در میاد و کنترل میشه اونجا عدالت محقق میشه وقتی که از حوزه فردی خارج میشه آهاد افراد یک جامعه موفق میشن که عقلشون رو بر نفسشون سیتره بدن در حوزه اجتماعی عنوانش رو حضرت صادق علیه السلام انصاف میگیره. عدل و انصاف عدلش میشه فردی و انصافش میشه جمعی انصاف اجتماعی امروز متغیر اصلی اینه که دانش که عدالت محقق نمیشه حالا اون تعبیری که حضرت امیر علیه السلام دارن که عدالت یعنی که هر چیز سر جای خودش قرار بگیره نظم یعنی هر چیز سر جای خودش قرار بگیره حقیقت هم یعنی اینکه در واقع هر چیز سر جای خودش قرار بگیره معنای عدل و نظم و حق یکی اما منظر نگاه امام صادق علیه السلام بیشتر به مسئله امروز به جامعه امروز ما نزدیکه دلیل عدم تحقق عدالت در جامعه امروز ما اینه که عقل بر نفسانیات بسیاری از انسانها به ویژه بسیاری از مسئولین کشور سیتره نداره و در عرصه عمومی اون هم عدم تحقق عدالت به این برمیگرده گرده که انصاف رقیق شده و رقیق میشه یعنی خرد جمعی بر نفسانیت جمعی تفوق و برتری نداره البته مردم به دین ملوکشونن پاسخگویی بخشی از عدله و همچنین بخشی از انصاف این که آیا پاسخگویی که امسال شعار پاسخ گویی داریم بخشی از عدل یا بخشی از انصاف پردست بخشی از عدل و بخشی از انصاف زیرا ما در هر دو محاسبه رو داریم حساب کتاب باید پس بدیم تا این مسئله خودش رو نشون بده و محقق میشه اما پاسخ به چی؟ پاسخ به خدا پاسخ به مکتب، پاسخ به حزب، حزب خود، پاسخ به مردم یا پاسخ به حکومت پاسخ به کی؟ مسئله پاسخگویی باید مشخص بشه به کی باید پاسخ داد؟ باید به مردم پاسخ بدیم؟ باید به حکومت پاسخ داد؟ باید به ایدئولوژی و مکتب پاسخ داد؟ باید به حزب پاسخ داد؟ به کی باید پاسخ داد؟ پاسخگویی در مقابل چه کسی؟ خیلی راحت گفته میشه که پاسخ به قانون ما باید بر مبنای موازین قانونی پاسخگو باشیم یعنی پاسخ به خدا پاسخ به مردم پاسخ به حکومت پاسخ به حزب همه اینها تعریف میشه در پاسخگویی به قانون و مبتنی بر قانون راه های فرارش هم همینه، راه فرار از پاسخگویی به چه کسی؟ راه فرار از پاسخگویی به خدا مگه میشه از پاسخگویی به خدا فرار کرد. علی با همه عظمتش امام عدل که کشته عدالت خودش بود تچید میکنه که ولا یومکنال الفرار من حکومتش من از حکومت تو به کجا فرار کنم؟ مگر میشه از حکومت خدا به جای فرار کرد؟ و در مقابل خدا پاسخگو نبود. اما خب بعضیا استنباط و استدلالی که چند سباهی مسئولند و میتونن از پاسخگویی به خدا فرار کنند فرار از پاسخگویی به مکتب خود. مگر میشه از پاسخگویی به قرآن فرار کرد؟ ویژگی های انسان مسلمان، مؤلفه های ایمانش یکیش ایمان به کتابه. کسی که در پاسخگویی و در مقام پاسخگویی به مکتب و ایدئولوژی خودش کوتا میاد و تفره میره در پاسخگویی به قرآن تفره میره. قرآن که کسی نیست، قرآن یک حقیقتی است که نسبت به معیار اون کسی کم بگذاره نسبت به معیار مکتب، فردا جواب این رو در اصلا حساب و کتابش در اقبا مبتنی بر مکتب و قرآنش هست. در پاسخگویی به مردم، فرار از پاسخگویی به مردم. خب یک بازی های سیاسی است. مردم این دفعه کسی فرار کنه از پاسخگویی، دفعه بعد بهش رأی نمیدن ممکنه بگن مسکن اشکال نداره، چهار سواری آمدین بارمون بارمونو بستیم یک زمانی یک جریان های سیاسی وقتی از قدرت داشت کنار می‌رفت، دید دیگه حالا 7-8 سال نیست تا یک دوم خردادی به وجود بیاره و کار رو دست بگیره، چندین طلا رو از کشور خارج کرد. یکی از کامیونهاشو گرفتن فرمانده انتظامی وقت از ژاندارمری آوردنش که تلویزیون گفت گفتن میگن آقا اینا مصر بوده آهن بوده گفت والا ما چی گرفتیم یه 20 تن تلا بود حالا اگه تبدیل شده به چیز دیگهای نمیدونیم اشکال نداره یه چند سباهی بارمونو بستیم گم شدیم از نظرها دوباره با دوم خورداد برگشتیم امروز همون چوب هراج رو به صندوق ذخیره ارزی کشور دارم میزنم اهم از نمیدونم صدها هزار دلار میدن کسانی که یک روز وقتی در مجلس شورای اسلامی حضور غیر قانونی و غیر منطقی داشتن یک روز برای مردم توی مجلس کار نکردند. داشتن فیلمشون رو بیرون میساختن حالا همین سیستم قانون و قانون تذیر و مدعی قانونگرایی همین پول رو صفا هزار دلار میده آقایان بران خارج از مردها شبکه تلویزیونی را بندازند تلویزیون خصوصی از کیسه کی می‌رقشند این قانونگرایان فرار از پاسخگویی به حکومت فرار از پاسخگویی به هزد و فرار از پاسخگویی به قانون پاسخگویی به خدا در عقبا پاسخگوی به مردم با چه مبنای به مردم باید پاسخ بدیم یا با مبنای قانون یا با مبنای ایدولوژی و دین و مکتب پاسخگوی به حکومت بر چه مبنا حالا مگه نمیگیم که رهبری گفته که باید با هایی که رهبری معین کرد باید پاسخگو باشند پاسخگوی به رهبری با چه مبنایی یا با مبنای قانون یا با مبنای نگاه حزبی احزاب که خودشون رو ذیل حکومت نمیبینن پاسخگوی به حکومت نمیبینن حزبازی در این مملکت به شده که به جای اینکه احزاب از مردم پول بگیرن برای مردم کار کنن سهمشون رو از حکومت میگیرن یعنی در حکومت و در مجموعه دولت برای احزابی که اساساً برای زدن در واقع ریشه حکومت فعالیت میکنن بودجه اختصاص داده میشه حالا چنین حزبی پاسخگوز احزابی که وقتی رد صلاحیت میشوند بعضی از افرادشون سناتور آمریکایی سام درامباچ سناتوری است که 53 میلیارد دلار میلیون دلار به 13 شبکه تلویزیونی لس آنجلسی داد که 18 تیر گذشته علیه نظام اقدام کنند همین سناتور وقتی بعضی از افراد اینجا رد صلاحیت میشن اسم این هشت نفر رو می‌نویسم میگه به دلیل اینکه این هشت نفر رد صلاحیت شدن تو این کشور باید برخ... با ایران باید برخورد کنید رئیس جمهور آمریکا می‌نویسه معلوم میشه این هشت نفری که اسمشون آمده بود جاسوس بودن عامل دست سنتور ساندرام بک و دیگران در کنگره و سنای آمریکا بودند ولی شما می‌بینید که این حزب برای اینکه چنین افرادی لیدرهای این حزب بیشتر بشن از دل بیت مسلمین به این حزب و امثال این حزب کمک میشه پاسخگویی به کی پاسخگویی به حزب لذا مکتب و حزب اینجا خنسا میشه پاسخگویی به مردم و پاسخگویی به حکومت در یک نقطه مشترکه در پاسخگویی به قانون مسئله فلسفی اینجا اینه که برخی وقتی شعار قانونگرایی میکردن و شعار قانون‌گرایی می‌دادن استنباط اشتباهی که صورت گرفت اینه که همه فکر کردن قانون خوب است این رو ما باید رو بر نظام حقوقی غرب و در لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی روشن کنیم ببینید اونجا فرض بر اینه که هر قانون است خوب است نه اینکه هر چیزی خوب است قانون است این مسئله توی کشور ما حل نشده کسانی که شعار جامعه مدنی میدادن روشن نکردن منظورشون از جامعه مدنی چیست کسانی که شعار آزادی میدادن منظورشون نسبت به لیبرالیسم روشن نکردن ضمنا شعار قانونگرایی که دادن چرا امروز میبینید اینجوری عمل میکنن یک میلیارد و 700 میلیون تومان خرج افتتاح یک فرودگاه میکنن ای که میشه با هزار تومان یعنی یه جعبه شیرینی پنج کیلو یه دسته گل خیلی راحت 50 کارگرم و کارمنده اونجا نم جمع کنید سوت کفی بزنن سلاماتی بفرستن تلویزیون دولتی هم اونجا ضبط کنه برای مردم پخش کنه مردم بدانید فرودگاهی افتتاح شد شهید رجایی نیست امام راحل نیست که ببینه بر آریچه‌ای نهادهای در واقع اجرایی کشور کسانی تکیه میزنن که به سادگی یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان هزینه میکنن برای افتتاح یک پروژه ناکارآمد وقتی به وزیر راه مربوطه گفته میشه اعلام میکنه که چه دست شما علیه ما دارید زمان هم در دولتهای قبلی این بوده راه آهن سرخ تجن رو وقتی در استان خراسان میخواستن افتتاح کنند، 700 میلیون تومان هزینه شد خب هم اون رئیس جمهور اشتباه کرد هم شما اشتباه میکنید هم اون وزیر راه و ترابری اشتباه کرد هم شما اشتباه میکنید هم اون باید جواب خدا رو بده هم شما باید جواب خدا رو بدید مردم صداشون در نمیاد در دیزی بازه حیای شما کجا رفته آقا قانونه قانون که میگه در واقع این کارا باید انجام بشه قانون در این ویدیو کلیپ ملاحظه فرمودید که مقام مظام رهبری فرمودن که انبیا آمدند که همین پابرهنه ها رو جهت دادن و همین پابرهنه ها حامیان و پشت سر انبیا بودند پشت سر امام راحل همین پابرهنه ها بودند امروزم پشت سر مقام مظام رهبرین همین پابرهنه ها هستند اما همین پابرهنه ها 400 نفرشون در راه آهن نیشابور پودر شدند و دولت و مجلس و دستگاه قضایی ما صدایی ازشون در نماند هیچ مدیری جابجا جا نشد سلولی از بعضی از اینها نماند سلولی یعنی چنان پودر شدن که اثری ازشون نماند اما همین ستا قوه بر سر اینکه یک زنی به نام خانم زهرا کاظمی مسئله براش به وجود اومده بود چون پشت سر زهرا کاظمی سفارت کانادا بود رضایت کانادا بود صدای همه در اومد قانون به این معنا نبود که اگر این اتفاقات در دوران اینها میفته صدا میکنن بلکه اینجا مهم نیست که خدا پشت سر اون مردم در اون روستا در میشابور بود مهم اینه که سفارت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و کانادا پشت سرشون نبودن کافی بود کانادا یه گوشه چشمی هم به قضیه راهن میشابور داشته باشه بعضی از آقایان اینجا وزیر عوض میکردن انصاف انصاف وجود نداره دولت مرد جمهوری اسلامی مبتنی بر روایتی که امام صادق میگه انصاف نداره انصاف و توازن یعنی این یک زمانی رئیس دستگاه اجرایی کشور وقتی در 18 تیر سال 78 یک دانشجوی کشته نشده بود شما دیدید بعداً در موارد. اینا از سازی کردن که آقا اول نهت دانشجو بوده کشته شده از اون بالا انداختن پایین 19 تیر بعد شد 7 تا شد 5 تا شد 3 تا بعد معلوم شد اصلا شب اول هیچکس کس کشته نشده اون قضیه که به خاطرش جنجال کردن اما همین رئیس دستگاه اجرایی هشتا تا وزیرش رو صبح روز جمعه همون 19 تیر فرستاد خدمت مقام معظم رهبری که چون این فاجعه رخ داده شما فرمانده نیروی انتظامی رو عوض کن 8 تا وزیرش رو فرستاد اما خون دانشجویی که اساسا کشته نشده بود امصاف اگه باشه خون اون دانشجو با خون این پیرمرد پیرزنی که در یک روستا در نیشابور بودن مگر تفاوت داره خون اینها 400 نفر اینجا کشته شد اما کسی نفرستاد سراغ ایشون که آقا وزیر عوض کنید بله وزیری که 400 نفر در تحت مدیریتش هر روز یه ما میفته وزیری که به سادگی 400 نفر در راه آهن نابود میشوند نیست میشوند و هیچ مدیری در جمهوری اسلامی جابجا نمیشه به سلامت و صحت این حکومت باید شک کرد این حکومت عدل نتیجهش این میشه که مار میخورن افعی میشن یک میلیارد و هستت میلیون تومن به سمن وقت از بیت المال این مسلمین هدر میدن بعد میان در مورد شهید رجایی میشونن حرف میزنن. قانون اونی نیست که خوبه. هر چیزی خوب بود قانون نیست. هر چیزی قانون بود خوبه. این یک خطره. نیومدن بگن که ما نگاهمون اینه. به این جمله فلسفی خوب توجه کنید. قانون، اونی نیست که خوبه، یعنی هر چیزی خوب بود قانونه، بلکه هر چیزی قانون بود از دید آقایون خوبه. این سیاست لیبرالیه، لیبرال دموکراسی ماهیت رفتار سیاسیش در این کلمه است. اگر چیزی قانون شد، این میشه خوب، امروز مثلا هزار یک کار خلاف شرع در قوانین مدرن هست، این خوبه، اما نه اینکه شما بگید فلان چیز چون خوبه چون قرآن گفته این مسئله خوبه بگن پس بشه قانون میدونید چرا انصاف وجود نداره در مسئولین جمهوری اسلامی چون به مر خوب که میشه قرآن عمل نمیکنن به مر قانون عمل میکنن قا... حالا دیگه قانون خوبه منظور از قانونگرایی این بود که میدید میشن می گفتن که آقا قانونگرایی پذیرش قانون مشکل اصلی در پاسخدهی و پاسخگویی مسئولین جمهوری اسلامی اینه که معلوم نیست ما با کدوم معیار باید پاسخگو بشیم و افراد رو ازشون بگیریم سوالات رو شما به مرام حزبی نگاه میکنید به تفکر مکتبشون نگاه کنید، به نگاه کارویژه این افراد در ساختاری که با مردم تمامونی که با مردم و سودی که از مردم بگیرند بگیرن تحدی پاسخگون که بتونن درفعه دیگه رای مردم رو بگیرن به رهبری که هیچ به رهبری که ذره قوای سگانی جمهوری اسلامی پاسخگو نیستند هر چیزی که شخص رهبری مملکت روش دست میگذره، اینها برخلافش عمل میکنن اصلا یک تشریفات یک صحنه کمدی کلاسیکه وقتی اعلام میشه آقا با دانه درشت ها برخورد کنید مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس سه تا قوه که سه تا روحانی دور هم جمع میشن انگاری رفتن عید مردم رو مسخره گرفتید یا خودتون رو مسخره گرفتید؟ این کاری که شما میکنید توهین به روحانیته، توهین به حکومت دینی است، توهین به رهبری مملکته. اون که نباید علنا به شما بگه ما به شما میگیم، اون که نباید هیزم جهنم شما بشه. وقتی خودشو خانوادهش دارن اینجوری زندگی میکنن ساده، شما خیلی بیجا میکنید که اینگونه ریخت و پاش میکنید. پاسخ به کی نمیخواد بدید شما میدونید یک میلیارد و هف میلیون تومن ریال ریال و دینار دینارش رو باید با جهنم سوزان پس بدید شعار قانونگرایی میدی؟ شعار رأی بیست میلیونی مردم رو میدید لباس روحانیت تنتونه گفتگوی تمدنهاتون انبر دنیا سوت کپ دادن. کدوم پاسخگویی؟ به جای رسیده وضعیت حکومت اسلامی ما که دختران شیعه رو میبرن در کشور امارات به حراج میگذرن اونجایی که علی فریاد میزنه اگر مرد مسلمان از قصه بمیرد رواز این وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که از قصه نمیمیره امسان نیست فکر کن دختر خودت آقای یونستی دارم توی امارات میفروشنش. آقای خاتمی، فکر کن دختر جوان خودتو دارن دارن میفروشنش. چطور می‌تونی سر راحت زمین بذاری شبها اوف اونایی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن برای مصلحت نظام تصمیم می‌گیرن، دختر شیعه رو دارن میفروشن توی امارات. شما چطور سر راحت شب زمین می‌گذاری؟ پاسخگویی شما به رهبر مملکت پاسخگو نیستید شما به قرآن پاسخگو نیستید اگر کسی قدرت داشت مملکت یه دهن شما میزد که یک میلیارد و هفد میلیون تومن رو نبرید راحت چی بزنید بگید چون زمان آقای رفزنجانی هم همین کار رو سرخت و تجمع صورت گرفته هم آقای بی خود کرد هم شخص شما آقای خاتمی فکر کنید دختران خودتون هستند دارند به ثمن وقت فروخته میشند از قصده اگر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بمیرد رواز رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اگر از قصه بمیرد رواز که دختر شیعه رو دارم توی امارات می و افت بر فرمانده کل سپاه تو ذخیره که جمهوری اسلامی هستی سپاه و بسیج جایی که دیگه همه از کار میمونن باید بیا توی صحنه و دختر شیعه رو میفروشن و پاسداران و بسیجیان راحت شبا میگیرن میخوابن من نمیگم خاک امارات رو به توبره بکشید تکلیف امارات با من اون روزی که شورای عالی امیت مدی جمهوری اسلامی نمیتونه علیه آمریکا اقدام کنه آقای حسن روحانی خونه چند میلیاردی میشینه سندلی هایی که میشیند توی تلویزیون میبینید مبلیز که از تخت شاه نرمتره اون آدم میاد جلو آمریکا بیسته اون آدم روحانیه که نجف و کربلای شیعه رو داره اسرائیل و آمریکا به خاکش رو به توبره میبره اون آدم میاد از عدالت امنیتی نام ببره اینها بیشتر به یک جوک شدی اگه فکر کردید مسئولین کشور دنبال تحقق عدالتند. کسی که رهبر این مملکت میزنه این حرفی که این قرآن سامت زده رو زمین داره میمونه من روی سخنم آیت الله شاهرودیه. اگر نمیتونی لبه ی قانون رو انقدر تیز کنی که جلوی قاچاق دختران این مملکت رو نگیرن یک لحظه بر پست قوه قضایی تکیه میزنی باید جواب این قضیه رو بدی غیرت دارید شماها؟ اگر غیرت دارید دارن ناموستتون حراج میکنند شکمشونو سیر نمیکنید نمی کنید اون چه وضعیتی وجود داره مسئولین امنیتی مملکت ساکت گرفتن شبا تو خونهشون میخوابند اگر میدانستید که مسئولیت چقدر سنگینه حتما آقای قالیباس نیروی انتظامی رو رها میکرد میرفت خونش. حتما آقای صفوی سپاه رو رها میکرد میرفت خونش حتما آقای یونسی وزارت اطلاعات رو رها میکرد میرفت خونه اش حتما آقای خاتمی و آقای شاهرود قوا رو رها میکردن میرفتن خونه همه شما مقصرید همه شما مسئولید باید جواب بدید تا زمانی که یک دختر شعه رو قاچاق میکنن به عون مردها گفته امارات باید صحبات اقتصادی داشته باشه این هشدار رو من به مسئولین کشور امارات میدم همانطوری که من با بزرگان ایالات متحده این هشدار رو دادم مسئولین امارات توی رسانه های غربی برم ببینن. که آمریکا اگر پا در مقابل ایران از حد خودش دراز کنه با حسن روحانی محمد خاتمی حاشمه رفسنجانی و اینها روبرونی نیست اون روزم ایران نبودند که این مملکت رو از دست آمریکا در اوردند او خاتونشون رو براشون شون کشیدیم. بیسوابت سازی ایالات متحده ای که طرح تجزیه ای ایران رو در دستور کار میگذاره، منطقه بیسوابت سازی آمریکا رو در دستور کار میگذاریم. اما اگر مسئولین دولت امارات احساس کردن که میتونن کانونی به وجود بیارن برای بیسوابتی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی، هر آدم فاسدی رو بیارن اونجا شو برگزار کنه جوانان رو در واقع اونجا کنن، دختران ایران رو برای مقاصد اونجا ترانزیت کنن. باید بداند که از این به بعد زمینه دیسباتی اقتصادیشو ما فراهم می‌کنیم. مسئولین دولت امارات بنده اعلام کردم که 52 میلیارد دلار از ثروت ایرانی‌ها و عرب‌ها رو از ایالات متحده ما با مرکز خودمون با مشاوره مجانی که دادیم کشیدیم بیرون. 7.2 میلیارد رو هدایت کردیم به دبی. اعلام رسمی می‌کنم که از هفته گذشته ما طرح بی اقتصادی کشور امارات رو گذاشیم دستور کار اگر قرار باشه محلی به وجود بیاد که ناموس شیعه به یغما بره بنده با این مسئولین جمهوری اسلامی هیچ نسبتی ندارم که هر کدوم یه شرکتی توی دبی دارن خدا به من دختر نداده اما ناموس این مملکت چون ناموس خداست ناموس منم هست ظاهرا رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مجریه و وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی و چه و چه اگر دخترانشونم به یغما برن شب سر راحت زمین میگذارند اینجا باید بگیم وا غیرتا پاسخگویی کدوم پاسخگویی راه فرار از پاسخگویی اگر آلوده نیستید چرا صداتون در نمیاد اگر شهرام شهرام جزایری محک امتحان ستا قوه مملکت بود محک بود دیگه معلوم شد یک الفبچه بیستونه سال را افتاد نصف مجلس ششم را خرید به رئیس مجلس ششم 500 میلیون به ستاد انتخاباتی رئیس جمهور میلیون به فلان آدم در راست این عدد میلیون به فلان آدم در سمت چپ این عدد میلیون همه رو با هم خرید شماش که قیمتتون اینقدر کمه جهنم رو چرا برای خودتون میخرید مسئولیت بر جامعه سنگینه اونم به نام دین به نام دین میدونید چقدر سخته؟ همه له میزنند میزنن پست و مقام بگیرن همین امام صادق فرمود ملعون است سه بار تاکید میکنه ملعون است ملعون است ملعون است کسی که برای پست و مقام رقابت میکنه و تلاش میکنه و خودش رو به خطر میندازه ملعونم خیلی از آدمها که در جمهوری اسلامی برای مدیر کل شدن و معاون شدن و وزیر شدن و نماینده مجلس شدن و رئیس جمهور شدن از سر و کول هم بالا میرن درخت بی رو کات میکنن تبدیلش میکنن به کاغذ و اکثر خودشون روش چاپ میکنند رو گر و دیوار و شهر نصب میکنند. میکنن. اینها اسمی ظلمه تارف هم نداره اسمم بر نمیتابه، آیت و و مهندس و دکترم نمیشناسه. زل، ظلم ظلمه جور جوره گریبانتونو آن سوی دنیا خواهند گرفت در اقبا پیش پیش بهتون حشدار داده باشیم اگر نمیتونید عدالت رو محقق کنید بیشتر از این آتش جهنم برای خودتون نخرید مرد مسلمان اگر از قصه بمیرد رواست و من مجبورم بگم که ما در اسلام شما باید تردید کنیم که از قصه نمیمیرید ناموس شیعه باید به فساد کشیده بشه. مملکتی که عظیمترین ذخایر نفت و گاز رو داره در اثر مدیریت بعضیها این وضعی هست که به وجود اومده آها کدوم عدالت همایش میگذارید برای چی جلسه سخنرانی میگذارید برای چی خودتون رو شما مسخره کردی؟ قرآن هرچی داره میگه اینا عمل کردن بهش آیا رهبر این مملکت هرچی داره داد میزنه این آدما گوش میکنن؟ گوش کسی بدهکار بود در مورد اون یک, یک میلیارد و 700 میلیون تومن؟ وقتی سکوت میکنه رئیس جمهور ما معنیش که من تایید می‌کنم یک میلیارد و 700 میلیون تومانو ناموس شیعه عیال خدا وقتی اونجا فروش میره مسئولین جمهوری اسلامی همه با هم مغصرن اگر یک قلم این اتفاق ها وزیر اطلاعات خودش استفاق می کرد ببینید تبعیزی که آقای خاتمی بینه اون جوان دانشجویی که اصلا کشته نشده بود در هیچ تیر با این چهارصد نفر آدمی که در نیشابور پودر شدن صدای هیچ کسان توی جمهور اسلامی در نایمه ببینید این تبعیزه این تبعیض اسمش بی انصافی است ببینید برای قتل های زنجیری در درون وزارت اطلاعات انقدر خونه اون آدم های روشنفکر برای آقای خاتمی اهمیت داشت که وزیر اطلاعاتش رو جابجا کرد اما امروز دختران این مملکت به یغما میرن وزیر اطلاعاتش و وزیر کشورش رو باشون برخورد نمیکنه. این بیانصافی مسئولین جمهوری اسلامی رو میرسونه حقوق بشری که شما میگید، کرامت انسانی که شما میگید اینجوری داره لکدار میشه این مسئله مسئله چهارتا دختر ما نیست، مسئله امنیت ملی جمهوری اسلامی است دختر ما رو وقتی میبرن اونجا حراج میکنن دارن به ما دهنگکجی میکنن میگن ما به شرافت و ناموستون حمله میکنیم سه تا از هیچکدوم از مسئولینتون در نمیاد مسئولین پلیس ما میدونن در مقابل خدا چه باید جواب این قضیه رو بدن اگر میدونستید همه تون با هم استفا میدادید یکی نیست تو مملکت بالاخره چهار نفر برخورد کنه جابجا جا کنه همه با هم تعارف دارن میدونید چرا چون همه از هم مسئله دارن من تعجبم از این آدما نیست تعجبم از سپاه که باید با این حرفا برخورد کنه وقتی زمانی که کشور یه زمانی امام راحت می‌فرمود اگر سپاه نبود کشور هم نبود داره دوباره کشور به همون مرحله میرسه داره به جای میرسه که نه از قوه قضاییه کاری ساخته است نه از دستگاه‌های فرهنگی نه از دستگاه‌های اقتصادی دشمن هم کنار مرزامون ایستاده حالا دوباره اگر سپاه نباشد کشور نباشد بابت فروش دختران این مملکت، سپاک پاسدار انقلاب اسلامی بوده، بایستی معاون عملیاتش، معاون اطلاعاتش و معاون فرهنگیش هر سه نفرشون توبیخ می‌شدن. مهم نیست که وزیر اطلاعات کارشو انجام نداده کسی از سیستم وزارتخونه وزارت اطلاعات نداره. مهم نیست که قوه قضاییه آقای شاهرودی نمیتونه، قوه قضاییه آقای شاهرودی در قضاییه شهرام جزایری معلوم شد که این کارو نیست. سازمان بازرسی هم که هیچ ول معطله همه تشریفاتی آقا مشاغل تشریفاتی رو بگذارید برید آخرتتون رو به دنیاتون نفروشید نمیتونید کنید به مردم بگید که چه عواملی وجود داره نمیگذاره این شبکه های رو معرفی کنید از چی میترسید اگر خدا رو در نظر میگیرید و اگر حمایت مردم رو پشت سر خودتون میخواید از چی میترسید اینقدر حرفا داره تکرار میشه که برای مردم علت شده اسم عدالت که میاد مردم میخندن ریخت و پاش به قایت حیف و میل به قایت سوء تدبیر و بیمدیریتی و بیلیاقتی، به قایت حالا دیگه کار به جای رسیده که ناموستمون میبرن اون بر مرزان میپروشن مسئولین کشور صداشون در نمیاد اگر وزارت خارجه داشتین صدا میکرد سفیر کشور امارات رو باش برخورد میکرد. آقا شما چه حق دارید اجازه بده تو کشورتون این بازی را بخت بده؟ میدونید چرا صداشون در نمیاد؟ چون آقایون اجازه دادن اول اونجا زمینه های فساد به وجود بیاد، افراد تیکه تیکه تیکه دارن اونجا کارشون انجام بدن، حالا براشون عادی و علاستویه شده. همین امارات و همین دبی که دو تا دونه ترقه دو تا بم در بیاد اونجا، کل موقعیت اقتصادیش میره به هم. همین امارات که ناموس شیعه اونجا خرید و فروش میشه. در مقابل آمریکا کرنش میکنن، بعضی از مسئول جمهوری اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری فرش قرمز زیر بغلشونه. در مقابل امارات هم کرنش میکنن. اینجا یک تاجر آلمانی بود توی مشهد این تاجر آلمانی با یک دختر شیعه روابط نامشروع داشت این وقتی رفت و برگشت اومد اینجا توی فرودگاه تهران گرفتنش یه چند سباهی زندان بود این فرد میدونید منظورشون از نظر سیاست خارجی و امنیت ملی چیه اینایی که اعلام می‌کردن زن شیعه و دختر شیعه نباید با مرد اجنبی ازدواج کنه ما خط قرمزشون در مینوردیم مرد و با غیرت در وزارت خارجهشون وجود نداره با این قضیه برخورد کنه وجود نداره اگر وجود داشت حداقل باید در روابط ما با آلمان تأثیر میگذاشت. خوب که دیدم نه اینا مثل که ناموسشون براشون مهم نیست میبرن اونجا میپروشن دیدن نه صدا از کسی در نمیاد کربلا و نجفتشون که ناموس فکریشون بود گرفتیم و توپ بستیم با صدا ازشون در نمیاد این اصطلاحا ما در علوم استراتژیک و در پرراهی امنیت ملی بهش میگیم برآورد گام به گام دارن تست میکنن غیرت در جوان این مملکت غیرت در دولت مرد این مملکت شناخت و بسیرت در مسئولین کدوم عدالت دشمن فردا تانکهاشو را میندازه تو ایران میاد سمت تهران چون تست کرده دیگه غیرتی وجود نداره اگر بود که مسئولین کشور فک میکردن دخترهای خودشونن و اگر از این بابت کسی از قصد بمیرد رواست مرد مسلمان و, و اگر نمیمیرند نشون میده که در اسلام بعضی از مسئولین باید تردید کنیم در انصافشون باید تردید کنیم در عدالتشون باید تردید کنیم هیچ کس پاسخگویی نیست هیچ دست جمهوری اسلامی جابجا جا نمیشه مگر اینکه مرگ و اسرائیل سراغش بیاد این خیلی خطرناکه این خیلی خطرناکه من هشدار میدم نسبت به مسئولین کشور بیش از 100 نفر از مدیران کشور به قدری مدیریتشون به قدری نگاهشون در 25 سال گذشته کهنه شده بودن اینا در نظام برای نظام مشکل امنیتیه عدالت پاسخگویی یعنی این بعض از افراد دیگه نمیتونن نفس بکشن آقا خستم پیرم این همه ما جوون داریم بعضی از آقایون ده تا ده تا شغل دارن توی جمهوری اسلامی خب معلومه که نمیرسید کشور رو با فکر امروزی اداره کنید حالا هی مقام سازمان رهبری میاد میگه آقا این کارو بکنید این کارو بکنید اینا گوش نمیدن گوششون بدکار نیست مبضا رو گذاشتن قانون قانونتون رو با کدوم مبنا تنظیم کردید قانونتون با چی تنظیم کردید قانونتون رو با اون چیزی که خوبه تنظیم کردید یا حالا یه قانون تنظیم کردید میگه چون قانون خوبه و دومیه دوبومیه میدونید چرا میان توی تلویزیون میگن آقا جان چرا راه آهنه نیشابورین و این بحران به وجود اومد میگن آقا این که ما کودشیمیایی و بنزین رو کنار هم توی ها میگذاریم این آینامه است دستور العمله. چون دستور عمله چون قانونه پس خوبه ما ما قصر نیستیم اصلا دستور عمل علمی حالا این دستور العمل ماله چه مال زمانه که رزاشا راهنه تو ایران راه انداخت. اینها چه کسایی بودن که معتقد بودن قرآن قرائت‌های مختلف فرمی داره قرآن رو میشه به شکل مختلف تعویل کرد قرآن رو باید درش جرح تعویل صورت داد اینها همین حرف رو به کار اجرا که رسیدن آین نامه های زمان رزاشاه در, در راه و ترابری برای مسئله راه آهن رو میگن این قانون ابدی اصلا نمی شه بهش دست بزنی این وحی منزله قانون اون چیزی نیست که خوبه قرآن خوبه پس قانونه نه قرآن قانون اون چیزی نیست که خوبه اون چیزی که در واقع معین شده ببینید بینید آینامه هر چیز قانون بود خوبه یه قانون تنظیم می کنن یه مش آدم بیت سواد شما گزارش کار مجلس ششمو نگاه کنید یک فردی سینماگر صبح شب سیگار میکشو ادمس میجونید دو بار تو مجلس مدخ کرد یک بارش در مورد اینکه بچه‌م میگه به من میگه چه بریم آمریکا آقا تو آدمی که نمیتونی بچت رو توجیه کنی که چرا نباید مثلا بری آمریکا یا چرا باید میریف یا نباید میرفتی تو وقت لیاقت داری اسم هنرمند توی این مملکت بیت بذارم؟ آوینی خدا بیا مرد مایه میذارن و آوینی که داره توی گور از دست امثال تو میلرزه حالا آقا رو نگاه میکنید نصف مجلس اصلا تو مجلس نبوده دوباره بلند شده نطخ کرده آبروی هرچی رو برده انصاف و ادالت یعنی اینکه هر یک نفر که رفت مجلس سینجین بشه حساب کتاب پس بوده تو چقدر موثر بودی؟ امروز اگر ما حرفی میزنی پشت سر یه رئیس جمهوری میگن آقا جان شما توهین میکنید اون رئیس جمهور آقا ما داریم میگیم که اون رئیس جمهور عملکردش مثبت نبوده داریم نقد میکنی دست اون نماینده مجلس نزنید دست این رئیس جمهور نزنید دست اون رئیس قوه قضاییه نزنید دست, دست هیچ هیچکس نزنید با هیچ کس حرف نزنید چطور سخنوی خودشون هم که اصلا خودشون در مقابل هیچ کس. در مقابل خدا در مقابل مردم در مقابل رهبر انقلاب پاسخی نمیدن پس چی؟ هیچ از این همایش نگذرید فایده نداره از این نشست ها نکنید دوران عمله دوران حرف نیست مسئولیت بسیار بسیار سنگینه کسی مقام و مسئول شد در جمهوری اسلامی گوشه ای از این کشور گرستنهی ای سر به بالین گذاشت باید جواب خدا رو بده ماشاءالله گردن بعضی از مسئولین انقدر کلوفته یک سندلی ها و تخت رو میشینن بچه یه ماشین های سوار میشن شما آمار خود سفر خارج از کشور مجلس ششم نگاه کنید به لطایف برای تفریح میرفتن خارج سفرهایی که میرفتن با مال حرام لقمهی که میخوردن مسئولین جمهوری اسلامی با مال حرام و میدونید حسین در صحرای کربلا چه گفت گفت شمشیری که پیامبر دست شما داد که از اسلام دفاع کنید میدونید چرا علیه فرزندش اینجا توی سرزمین تف توی کربلا بکار میگیرید چون مال حرام بیت المال زیر پوستتون جمع شده و من به رهبر معظم انقلاب میگم آقا بخش امدهی از مسئولین شما مال حرام بیت المال زیر پوستشونه به این خاطر حرفای شما تو گوششون اثر نمیکنه. به این خاطر که قرآن به اینها کارگر نیست. قرآن میگه ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا افتارهم قشا و مهر زدیم به قلبشون. اگر مسئولی در مملکت اسلامی مهر به قلبش نخورده باشه بابت کارتونخوابها، بابت زنهای خیابونی، بابت های موتار، بابت دختری که در خرید فروش میشه در امارات و بابت کربلا و نجفی که بهش حمله میشه این باید از قصه بمیره اگه مسئولین جمهوری اسلامی نمیمیرند بعضیشون از قصه که مسئولیت مستقیم تو این زمینه ها دارن اینا برن در ایمان خودشون شک کنن اینو انتقاد نگیرید، اینو نگید فهاشی، آقای خاتمی به رئیس دفترت وقتی آقای حسین واله معاون سیاسی دفترت حرفای من رو میاره برات ننویس زیرش اینها فحش هست، فش رو با منطق جواب نمیدن منطق یک میلیارد و هفتصد میلیون تومن رو قیچی زدن، اون, اون دنیا سر دزم. از فلسافرین همدیگر رو میبینید بعد بهت میگم که منطق ج... با منطق میشه جواب داد یا نه حرفای روشن فکری بر مصند قدرت جواب نمیده. مصند قدرت کار میخواد. حرفا زشت است، این حرفا فوش است. عمل چرا شما که بیشتر فوشه. پاسخگویی؟ کدوم پاسخگویی؟ گوش کسی به کار نیست. کربلا چرا به وجود اومد؟ بخونید خطبه های حضرت رو. حضرت اب عبدالله میفرماد میدونید شما چرا جلو من ثبت کشیدید چون نون حرام لغمه حرام بیت المال زیر پوست شما جمع شده به خاطر این چشم و گوش اینها اینا اسرائیلی که نبودن آمریکایی نبودن عرب بودن مسلمان بودن مسلمان نما. شمشیر و تیخ کشیدن بر علی بر حسین و بر سایر فرزندان پیامبر انسان به این درنجه از انحطاط میرسه مسئله ریزش ها و روی ها رو که مقام معظم رهبری تاکید کردن از این جهت میگم من هشدار میدم به مسئولین جمهوری اسلامی عاقبتتون داره سیاه میشه حیف و میلایی که زیر دست شما تو دستگاه ها داره صورت میگیره عاقبتتونو داره میسوزونه جهنم درش بر روی اکثر مسئولین جمهوری اسلامی بازه با این مدیریتی که داره صورت میگیره مگر اینکه فکر کنید از پس امروز فردایی نیست وای اگر از پس امروز بود فردایی حافظ رحمت الله علیه اینو گفته امروز مساق حرف مسئولین جمهوری اسلامی گر مسلمانی گر عدالت است که مسئولین ما دارند وای اگر از پس امروز بود فردایی نایب امام اسق هی hey, داره داد میزنه آقا به, به ها برسید عدالت محقق کنید میرم دنبال بازی های قرآن داره فریاد میزنه بر جان و مال و ناموس مسلمان سیطره پیدا کردید حقش رو باید ادا کنید نمیتونید ببرید کنار نمیتونید برید کنار حرف روشن فکری مال اینجاست. اینجا از اینجا صبت شب بید کنار دست من بشیم از این حرفا بزنید زره سود زیان برای مردم داشت اما برید مصد قدرت رو بگیرید بجنید که برای مردم کار کنید دنبال یلری تلری این کلمه یلری تلری سخیفه در بحث اما واقعا نگاه کنید معاون حقوقی یه رئیس جمهور تو حکومت دینی یه کتابی از نام جنگ شکر در کوبا من نوجوان بودم که انقلاب شد این کتاب رو دستمون بود اون کتاب هایی که اوائل بود جلد رنگی داره جان پولسات فرانسوی. این بلند میشه بعد از انقلاب کوبا میره کشور کوبا در کوبا به این چگوارا ارنست چگوارا این چریک مبارز آرژانتینی که اومده بود کمک فیدل کاسترو و کوبا رو آزاد کرد این شد وزیر اقتصاد در دولت کاسترو ساعت قرار جلسه به فیلسوف بزرگ فرانسوی جانپول سارت میده ساعت دو نصف شد. دو نصف شد. اگر فیلسوف دست صدم غربی بیاد تو ایران نه آدم های وزیر ما رئیس جمهور ما بهترین ساعتش رو اختصاص میده که با اون فرد صحبت کنه. نتیجه چی شد؟ جانپورساد اول کتاب جنگ شکر در کوبا میتونید کتاب پیدا کنید ببینید. میگه رفتم اونجا ساعت دو نصف شب به من وقت جلسه داده بودم. دو نصف شب. یک انسان کمونیست یک وزیر 36 و شش ساله جوان ملهد بی خدا بوده دیگه اتقاد به خدا نداشته چه گوارا سر ایمان به کفر ساعت دو نصف شب قرار جلسه داده به فیلسوف بزرگ فرانسوی جان پوسات میگه رفتم اونجا دیدم نگهبان ها همه رو سندلی هاشون افلاعات و بغلشون خوابیدن نیمه خواب نیم بیدار رفتم توی جلسه پشت در اتاق چه گوارا چه بوارا آمد دوش گرفته بود، سرحال، سیگار، برگ، کوبایی، گوشه لبش، یونفورم نظامی توی تن اومد نشست. محکم، صد دونست شفت. بهش گفتم چرا این وقت شب جلسه گذاشتی؟ گفت ما خیلی کار عقب مانده داریم. دیگر نباید خوفت. رضا خیلی باید کار انجام بدیم. اینو رو جانپورساد توی پرانتز نوشته. دیگر نباید خوفت. یک جوان ملهد مارکسیست از آرژانتین میاد کمک میکنه به کوبایی ها آزاد میشن پست و مقام رو رها میکنه اون روزی که وزیر بود دو نصف شب به فیلسوف بزرگ فرانسوی وقت میده بلند میشه میره پست و مقام رو ترک میکنه به فیدل کاستر میگه خداحافظ کشور تو آزاد شد من بعد میرم سایر کشورها رو آزاد کنم میره توی بولیوی و آمریکای توی بولیوی جنگ چریکی رو تو تو بولیوی کشتنش حد اقل اندازه این جوان ملحد مارکسیست غیرت داشته باشن بعضی از مطبولین توی جمهوری اسلامی ساعت دو نصف شب به یک فیلسوف غربی قرار جلسه میگذاره همیشه من در طول 25 سال گذشته هر وقت یاد این جمله چگوارا میفتم که دیگر نباید خوف میگم اون امیدی به اقوا نداشته اون چطور خواب و بر خودش حرام میکرده ما به راحتی میگیریم میخوابیم این فرصتی که گیر هیچ پیامبری نیومد این قرآن رو ببینید هزار سال نوح تلاش کرد شرایطی مثل شرایط ما اندازه ده ثانیه گیرش نیومد رو یکی پس از دیگری شه... شهید کردن امکان اینکه حکومت دینی بتونن راب اندازن فراهم نشد ما آنچه را که انبیا و ائمه و زعما و شهدا و صالحین تلاش کردند به دستمون رسید به سمن بخص داریم میفروشیم رها کردیم شبا میگیریم راحت میخوابیم خوادیم از یک چگوارا دیگر نباید خوفت. اون موقع در حکومت اسلامی معاون حقوقی رئیس جمهور مملکت همه هم ما شالله ما ما ها مشکی. اینقدر کمخابیده بابت تحقق کلمت اللهی الالیا اینقدر کمخوابی و سختی و گرسنگی کشیده بابت تحقق آرمان های جدش پیامبر اکرم ما شالله شکم عدالت روزنامه شرق چی شاب کرده بود از این آدم یه وبلاگ رو انداخته یه موبایل هم از اینا که دوربین داره گرفته دستش چون رانت مقام حکومتی بودن داره همش تو این جلساتام رو ببینه کی کروبی پیش میکشه عکسشو بگیره بذاره روی سایت روزنامه شرق عکس چاپ کرده بود روزی که خاتمی رفته بود مجلس داش با که از این نمایندز زن خاتمی صحبت می‌کرد شرق عکس اینو چاپ کرده بود که عثی اینجوری دلا شد اومده جلو داره اینجوری با این موبایلش داره اینجوری عکس میگیره از این دو که بعد عکس خاتمی و این خانم نماینده رو بره بذاره روی وبلاگش اون آدم ملحد که لباس دین بر تن نداشت آقای چگوارا ساعت دو نصف شب رو بر خودش حرام میکنه فیلسوف شرقی رو فیلسوف فرانسوی رو به حضور میتذیره بایش صحبت کنه میگه ما دیگر نباید بخوابیم کار عقب مانده توی کوبا زیاد داریم کوبایی که کشور خودش نبود حالا کسی که لباس تیامبر تنشه کسی که ادعا میکنه سیده اصلا انقدر وقت تو جمهوری اسلامی مفته انقدر انرژی مفته که یک معاون رئیس جمهور اسباب بازی گرفته دستش را افتاده یه سایت را انداخته صبحتشد چسپ میکنه به عدالت در این حکومت بایستی تردید کرد در خانه اگر است یک حرف بس است اگه راست میگید یک چنین معاون وزیر رو به معاون رئیس جمهور رو بندازید بیرون وقتی تعیید میکنه رئیس جمهور مملکت چنین معاون وزیری رو اون رئیس جمهور نمیتونه دم از حرف، حرفای روشن فکری بزنه رئیس مجمع تشخیص مسلحتی که تمام فامیلش کارتل های اقتصادی کشور رو در اختیار دارن این فرد نمیتونه دم از عدالت بزنه دیگه در خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی اون روزی که توی خطبای نمازومه داد میزدی برای جنگ بنده نوجوان می به دستور شما روی مین گذشت امروز شما هر چیدگی بچه ها میخندن. چون عمل خودت و فامیلت رو یه چیز دیگه می بینن رهبر مملکت روی صندلی ارزان قیمت ده هزار تومانی می جناب عالی روی مبل ده میلیون تومانی میشینی. پسران رهبر این مملکت با اتوبوس میرن قوم درس میخونن برمیگردن. پسرای جنابالی کارتل بزرگ کشور رو در اختیار دارن. این مسخره بازی ما بشینی میشه در مورد عدالت صحبت کنیم مسئولین کشور گوش به حرف رهبری مملکت ندن، گوش به حرف قرآن ندن. لباس دین هم تنشون باشه دارن به همه تنکجی میکنن و قرآن به هم کجی میکنن. به, به شعائر دین تن ذهن کجی به امام زمان عجلا تعالی دارن ذهن کجی میکنن. آبا ما ساکت بشینیم و حرف ندانید روحانیت زیر سال میره روحانیت مهمتر یا اسلام اگر ذره ای تاریخ اسلام رو میشناختید و تاریخ جهان رو میدونستید که 124 هزار نبی خونه دل خوردن تا جمهوری اسلامی امروز به وجود بیاد 12 امام معصوم خونه دل خوردن تا امروز جمهوری اسلامی به وجود بیاد بنده باید بنشینم آقای افتهی جمهوری اسلامی رو توی چترم به ثمن وقت ببخشه آقای خاتمی با حرفای روشنفکری جمهوری اسلامی به تفکر آمبرتو ایکو ببخشه ارزه داشتی یه وزیر جابجایی کردی به شهادت قواعد مدیریت وزرای کابینه آقای خاتمی از نظر نرم مدیریتی زیر صفرن خجالت داره حکومت اسلامی وزیراش نقدر است. و یک خطو من برای مجلس هفتم میکشم اگر وارد بازی های سیاسی بشوید اگر بر مبنای شعارهایی که دادید عمل نکنید جهنم رو برای مسئولین دولت سازندگی و مسئولین دولت دوم خرداد ترسیم کردیم که بنده اباسی با همه مسئولین دولت سازندگی و دولت توسعه سیاسی هممون با هم قرض اصل تردید نکنید اطلاعاتی که من از کار کرده دولت سازندگی و دولت آقای خاتمی دارم همه ای این مسئولین با هم هممون ته جهنمی ایمان مردم رو ببینید شما چه دار کردید سفره مردم رو آلوده کردید دختران شیعه رو دارن خرید و فروش میکنند بنده اول شما شما پشت سرم هممون ته, جه، ته از اصفلا شاید یک مقداری آقای خاتمی و دوستان دیگرشون به تحرک در بیان هشدار میدن به جامعه روحانیت مبارز هشدار میدن به جامعه مدرسین هشدار میدم به مجمع روحانیون این اقدامات داره به اسم دین تمام میشه این ناکار آمدی ها و سو مدیریت ها و ها داره به اسم روحانیت تمام میشه آخون بلندگوی اسلام بوده و هست اجازه ندید که اینجوری حیثیت روحانیت به سمن بخص فروخته بشه اونهایی که از جامعه روحانیت مبارز رفتن دانشگاه رو انداختن خروجی های دانشگاه چی بوده؟ کدوم دانشگاه دینی رو رو چرا پاسخگو نیستید؟ شما که پاسخگو نیستید نه به مردم نه به رهبر این مملکت حالا که پاسخ نمیدید من هشدار بدم دروازه جهنم بازه ها جهاد دری از درهای بهشته و نقطه مقابلش این خفتی که امروز بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی دارند ارائه میکنند این دری از دروازه های جهنمه از روزی که علنی شده خرید و فروش دخترای ایرانی در کشور امارات حداقل توقع اینبود که فرمانده کل سپاه طرح حمله هوایی به امارات رو در دستور کار بگذاره فرمانده نیروی دریایی از اینکه از اون مسیر اینها قاچاق میشن شب باید بر خودش بلرزه اگه سر راحت بر زمین میگذاره فکر کن دختر خودته ای سپاه ای ارتش ای نیروی انتظامی ای معمورین اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان به خودتون بیاید. به سمن بخص حیثیت و شرافت ما فروخته میشه. این مسئولین روحانی عمل کرد شما به نام دین داره تمام میشه. این از نشانه های آخر از زمانه که من کتش شلواری باید بیام از دین دفاع کنم به شما فرد روحانی اعتراض کنم. یک روز این پیر عشق پریاد زد که ای نجف ای قوم من اعلام خطر می کنم حالا دیگه نمی دونیم به خطر اعلام خطر کنیم در مورد نجف نه در مورد قوم نجف رو سرباز آمریکایی زیر تانک های زیر شنی های, تانک های خودش به رفت در و کربلا و مسجد سهله رو و قوم رو فسق و فجور و فساد بعضی از جوان که رهاورد کرد دولت سازندگی در اقتصاد آلوده به اقتصاد غربی و دولت توسعه سیاسی در بست جامعه مدنی بود مظلومیتی که مراجع تغلید امروز در قم دارن از خونهشون دو قدم بیرونتر نمیتونن بیان امروز اون مرجع تقلید در نجف و کربلا از خونش نمیاد بیرون در اعتراض به عملکرد این مراجع تقلید امروز نمیدونن چیده کشن از آنچه که در خیابون های قوم میگذاره و بقیه خیابون ایران آقا اعتراض نکنید روحانیت میشکنه این روحانیت خودش خود دست خودش خودش رو شکسته به داد روحانیت برسی به داد اسلام برسی به داد قرآن برسی جوون ما تو دانشگاه و حوزه یقی ما رو میگیره میگه آقا این اسلام بود که پیاده شد بابا وله اونی که آقای هاشمی پیاده کرد در دوران سازندگی وره اسلام درش نبوده جوون ها به اصاب اسلام نگذرید. وله ذره ای کاری که هست هفت سال دولت آقای خاتمی انجام داده ذره دین درش نبوده بلکه دیشتر زبه دین بوده شما را به خدا به حساب دین نگذارید اگر دیدید بعضی صداشون در نمیاد خودشون صد در این قضیه مسئله دارن مظلومیت علیه دوران در اینکه که هر چه میگه حکم خطبه شخشقیه پیدا کرده از ابن عباس هم وقتی حضرت از منبر پایین اومدن ابن عباسم هم نگفت که آقا عجب حرفای زیبایی در مرجع کوفه زدی فقط چقدر حرفات عمیق بود در خطبه شفشغیه فقط ابن عباس گفت از نظر صرف و عربی چون خطبه شفشغیه خیلی زیباست آقا عجب زیبا بود ادامه میدادی حالا مقام معظم رهبری که میگه بعضی از این آدما میگن آقا عجبی شما سالی که منتسب میکنید سال عزت و افتخار سال پاسخگویی، سال عدالت. آقا عجب زیباست بگید. شما به کیو دارید مسخره میکنید؟ معیار شخص ولی امر مسلمینه، زندگی سعادت. شما چون بر خلاف زندگیشون عمل میکنید، ما ذره کوتا نمیایم. کوتا نمیایم. پشت سر رهبری مملکت قایم شدن، پشت سر قداست اسلام قایم شدن. پشت سر قداست روحانیت قایم شدن پشت سر نظام قایم شدن دیگه تمام شد دورانش هر کسی کار خوب میکنه این حاصل قرآن بوده. ببینید قرآن العیاز و بالله حرف منفی نزده حکم بدم نداده اسلام و نظام حرف منفی نزده حکم بدم نداده ولایت حکم منفی نداده و حرف بدم نزده پس هرچه خوب میشه مال قرآنه ایدی که ندار قرآن لارای بسی هیچ شکی هم درش نیست پس هرچی در نظام ما خوب میشه کار اسلامه و کار قرآنه و کار بلایت. هر چیزی بد شد مقصرش کسایی که مسئولن بایستی اشکال کارتونو به بگیرید معنا نداره روز گذشته قایه مقام سازمان صدا سیما آمده نشسته اینجا میگه آقا به من گفتن تو نصف بودجه سازمان باید از راه تبلیغ چیپس و پفک در بیاری یه حرف غلط بیجا شده قانون مقامات کشور رو وادار میکنن که به قوانینی عمل کنن که این قوانین زشته اما دیدید گفتم از نظر مبانی فلسفی میگن هر که قانونت خوب است نه, نه اینکه هر چیزی خوب بود قانونه یه قانون قلط. آقا باید مصرفگرایی رو در جامعه دامن بزنی باید پولشو در بیاری باید پولشو در بیاری باید پولشو در بیاری به هر قیمتی که شده این مسئول رو اینجوری میذارن تو فشار اون مسئول رو اونجوری میذارن تو فشار با قوانین غلط. یه چیزای غلطی رو قانون میکنن بعد میگن حالا دیگه قانون خوبه حالا باید قانون گرا بشید پاسخویی از قانونه قانون ما اشکال داره قوانین ما ریشش در دین نیست در دین نیست سنگامونم با میکنیم با بعضی از مسئولین قرار باشه این حرفا به اسم اسلام تمام بشه ما از اسلام دفاع میکنیم، نه نه بعضی از مسئولین در جمهوری اسلامی صرف این که شما متدینید به این معنا نیست که دین پیاده شده زیر طلبگی در مسئولین کشور مرده گفتش که هر کس به ما منتصبه بیشتر از پیکار نباید سوار بشه هر کس به ولایت به به ما منتصبه پیکان بیشتر اگرم تمکنی داشت به خونه محدود جمع جور همون عدمی که این حرفو زد به شما ها امروز شما خونای یک میلیاردی دارید دوباره حکم شما رو تایید میکنه میشید مسئول در فلان شورا و فلان شورا به این معنا نیست که ایشون وقتی به شما دوباره حکم داده به این معنا نیست که ما شما رو نقد نکنیم شما از حسن نظر مقام معظم رهبری سوء استفاده میکنید زمانی که ایشون قرار باشه با شما برخورد کنه اعلام کنه اون موقع مردم با شما برخورد جدی خواهند کرد جهنم رو بر خودتون نخرید از امامتون پیشی نگیرید. اگر اون استفاده نمیکنه از خیلی از مسائل و موهبت‌های دنیایی شما بهره بیشتر نبرید. در این مملکت مردم سر گرسنه زیاد زمین میگذارند. آیا هیچ وقت دوروبری های آقای حاشمی گرسنگی کشیدن؟ هیچ وقت دوروبری های آقای خاتمی گرسنگی کشیدن؟ هیچ وقت دوروبری های آقای شاهرودی گرستنگی کشیدن پیاده بشید از این ماشین ها از این خونه ها دور بشید اسلام مردم رو توصیه کرده ما مردم شما رو توصیه می کنیم روزه مستحبی بگیرید مستحب دوشنبه ها و پنشنبه ها روزه بگیرید. مسئول در جمهوری اسلامی هر روز باید روزه بگیره تا به فهم مردم چی نکشم. من در ناسیه شما نمی بینم که نماز شب خونده باشید. شهرهاتون نورانی نیست. نگاه کنید صورت نورانی مقام مدزم رهبری رو نماز شب نمیخونید. اهل تهجد نیستید. روز گرسنگی بکشید به کشید مسئول در جمهوری اسلامی و شب سر بر مهر بگذارید و از خدا بخواید که شما رو ببخشه از خدا بخواید که نجاتتون بده از آتش اگر تیامبر اسلام روزهای آخر عمر مبارکش در قنوطش میگه خدا یا یک لحظه منو به حال خودم با وای به حال شما که نیراس همه انبیا و ائمه شده جمهوری اسلامی به دست شما سپرده شده و در این مملکت دختران شیعه رو میبرن میفروشن به قوت تاختن صدامون در نیامد کربلا و نجف رو گرفتن صدامون در نیامد ای جوان مسلمان بدانید دیر نیست که و مکه و مدینه هم زیر شنی تانکای آمریکایی و اسرائیلی به چار صدمه بشه همین مسئولینی که امروز گفتن قضیه چربلا و نجف زشت بود ما نپسندیدیم. اون روزم مطمئن باشید بازم میگن در قضیه گفتگوی تمدنها خشونت زشت ما نمیپسندیم. من به آقای خاتمی توصیه دوستانه و برادرانه میکنم. آقای خاتمی نسبتت رو با جهاد و شهادت روشن کن. خشونت تا کجا از دید شما بده؟ آقای خاتمی به عنوان یک روحانی مسلمان یک بار دیگه قرآن رو بخون، آیه های جهاد و شهادتش رو ببین. توصیه برادرانه می کنم. به فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و به سربازان گمنام، گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات توصیه می کنم تهجد شب زندهداری رو پیشه کار کنیم تا خدا از گناهان ما بگذره این که یک ناموسشی از کشور خارج میشه همه ما فردا باید جواب خدا رو بدیم همه ما استقفار کنید اگر در دوران مسئولیتتون سرتون شب راحت بر زمین گذاشتید سیر خوابیدید دخترتون رفته دبیرستان رفته دانشگاه خوب ازدواج کرده تالارهای بزرگ گرفتید برید استغفار کنید که دخترانی در این مملکت هستن که مثل برده خرید و فروش میشن. یه مغزاری پیاده برید 25 سال بین مردم نیستید بعضی از مسئولین 25 سال توی یه میرن ها و روبر میان بین مردم با مردم زندگی کنید بارها رهبر معظم انقلاب با لباس مبدل کوچه پس کوچه های تهران رو میگردن جنوب تهران رو میگردن روسته رو میگردن یک بار همراه بشید اگر ما بالاتر از این نمیگیم بابت اینکه که ایشون میخوان سجاده من جلوتر جلوتر نشه. نشه. بازم توصیه میکنیم خودمون رو توصیه میکنیم به حق و بعد شما رو خودمون رو توصیه میکنیم به عدل و انصاف و بعد شما رو ما نمیگیم که شما شرق قبل کنید مگه انبیا تونستن مگه ائمه تونستن که از شما کسی توقع بیشتر داشته باشه اما ریخت و پاش خیلی زیاده مبنای پاسخگویی تون قانون نباشه قانون ما ناکارآمده. قانون ما کارآمد نیست مبنای پاسخگویی تون قرآن باشه فرصت ندارید قرآن رو بخونید مبنای پاسخگویی تون تدابیر مقام معظم رهبری باشه مسئولیت گردن خودتون رها کنید بندرید گردن مقام معظم رهبری ایشون اون دنیا به خدا جواب بده هر چی ایشون به شما گفته همون عمل کنید اگر گلستان نشد هر ایشون تأکید میکنه و توصیه میکنه آویزه گوشتون کنید ملت و مردم و مسئولینی که قدر امام عادل و صالح رو ندونن خدای نعمت رو ازشون میگیره و اهل ظلم و کفر و جور رو برشون حاکم میکنه مردم ما قدر نعمت داشتن امام آدلی مثل مقام عظم رهبری رو میدونن ببینید پونزده مای از عراق گذشته یک حکومت دست نشانده رو برشون حاکم کردن عین افغانستان حکومت های دست نشانده دورو برمون پره کاری نکنید اعتماد این مردم به اسلام و نظام کم بشه نگید با حرفای امثال تو اعتماد مردم به نظام کم میشه تازه ما این رو مردم تخلیه میشن بابت سوء مدیریت شماها. اگر در ده سال اول انقلاب مشکلاتمون کم بود به خاطر تهجد عمده مسئولین بود شب زندهداری نماز شب مسئولین به خاطر روحیه عبادی و زی طلبگی اینها بود لذا هم خودم و هم شما رو توصیه به تقوا میکنم در غیر این صورت مسیر جهنم به روی من و شما مسئولین جمهوری اسلامی بازه میدونید چرا لحد محکم حرف میزنم چون در جمهوری اسلامی سر گرسنه زیادی بر زمین گذاشته میشه نوامیس زیادی به خاطر مشکلات عدم عدالت اجتماعی و عدم انصاف اجتماعی به یغما میره و در همه این موارد من و شماها و والسلام